عوض بالله السميع العلیم من الشیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا و آله تاخرین بحث ما اولا انشاءالله که در صحت و سلامت کامل هستید و از هر بلایی هم بدور دور بحث ما در کنایه به اینجا رسید که ما کنایه رو تعریف کردیم ذکر ملزوم و اراده لازم با وجود قرینه کاشف و بعد هم کنایه رو تقسیم کردیم به کنایه صفت، موصوف و نسبت. گفتیم و منظور از صفت و موصوف اینجا صفت و موصوف لغوی است. و باز عرض کردیم که در کنایه نسبت ما صفت رو میاریم، درست رو به اون تصریح شده یا چیزی که مستلزم صفته در کنایه نسبت و اون را به متعلق موصوف نسبت میدیم میگیم نهب تو مشت فلانیه یا میگیم سیبوه تو مشتشه که مستلزم صفته یعنی نهب دانستن بعد هم گفتیم که قرینه کاشفه در واقع قرینه که به ما میگه معنای مجازی رو باید بفهمی ولی اگر معنای اصلی و حقیقی و موضوع له رو هم فهمیدی، اشکالی ندارد. یعنی شما در فلانت و بعیدت و محول القرد حتما باید بفهمی که او گردن فرازی دارد. این گردن فراز بودن که صفته اینو باید بفهمید. اما اینکه حالا او گوشواره بلندی هم دارد، اینم فهمیدی مشکلی نیست. قرینه جلو او رو نمید. اما اگه فقط بفهمی که او صاحب گوشواره بلند است بگیم خب یعنی چی میگه خب گوشباره داره دیگه گوشباره شن درست پس تو معلوم میشه که کنایه رو نفهمی اما یادتون باشه گفتیم در بعضی از کنایات نه به خاطر این که قرینش کاشفه نیست بلکه بلکه به خاطر این که موضوع کنایه اجازه نمیده که شما معنای اصلی رو رعایت کنید و قبول کنید و بفهمید مثل الرحمانا علال عرشه استوا خدا بر عریقه قدرت خود نشسته است یعنی خدا داره امورات عالم رو اداره میکنه حصل نشده این سلطنت میکنه این منظور اما اینکه ما تخت بفهمیم و خدا روش نشسته باشه این به ذهن نمیاد و نباید هم بیاد چی مانع شده از اومدن اون به ذهن آن اینکه خداوند دارای جسم نیست مثل یدالله مغلولتن مثل بلیداه و مبسوطتان که مثال زدیم دست خدا بازه دست خدا بسته است یعنی خدا تواناست خدا عاجز نیست اینو باید بفهمیم اما اینکه خدا دست داره دستش بسته است یا دست داره دستش بازه این دیگه فهمیده نمیشه چون خدا دارای اعضا جواره نیست گفتیم مثلا حتی مثل شعر خنسا که میگه طویل و نجاد رفیع اول اماد کسی رماد. درست شد مثل شعر خنسا که میگه کسی رو رماد رفیع اول اماد، طویل و نجاد شما اینجا که دارید اینها رو میبینید ها؟ اینها درسته کنایات صفته اینا درسته که کنایات صفته ولی اون زمان که به کار برده منظورش این بوده که او شجاع او رئیسه او بگو کریم است و جواده منظورش اینا بوده اینا رو باید بفهمی اما اگر واقعا بفهمی قلاف شمشیدش هم،, هم درازه بفهمی که خیمه شم بلنده بفهمی که پشت در خونه شم پر خاکسته اشکالی نداره چون اون زمان اینطور زندگی میکرد یعنی اگر این کنایاتو الان در مورد من بخوای بکار کار ببری دیگه صحیح بگید نیست دیگه صحیح نیست چرا چون من الان شمشیر به کمرد نمی بندم تو خیلی زندگی نمی کنم. و پخت و پز خانه ما با بگید خاکستر و چوب و هیزم بیست این کل مبحث کنایه بود که من دوباره تکرار کرد حالا نگاه کنید بیاید توی نموزج که درس رو دورت اکرار کرد. قال المتنبی فی وقیعت سیف دولت به بنی کلاب متنبی گفته در مورد حجوم و شبیخون آقای سیف و دوله به بنی کلاب بنی کلاب شورش کردند، او به بنی کلاب یورش کرد و بنی کلاب رو مورد شبیخون قرار داد شبیخون چطور بود میآمدن شبنگام از اونها رو محاصره میکردند. در حالت کاملا تنهایی درست شد؟ بعد خودشون آماده میشدند نزدیکیهای صبح بر اونها حمله میکردند. بعد که بر اونها حمله می‌کردن یا اونها در حال بزم و شبنشینی بودند، یا خواب بودند غافلگیر میشدند. تا به خود بیان اونها رو از دم گذرانده بودند و شکست داده بودند سیف هم همین کابی کرده با بنی کلاب ببینید چی میگه میگه فمسا هم زمیر داخل مسا میخوره به سیف الدوله هم یعنی بنی کلاب سیف قروب بر اونها وارد شد یعنی غروب بر اونها محاصره کرد و شبیخون خودش رو تکمیل کرد فهم از و هنگام بر اونها وارد شد و بستو هم و این واب واب حالی هست. و حال که زیر اونها حریر بود یعنی اونچه که نشسته بودن روش از حریر بود ابریشم بود پس غروب که بر اونها وارد شد اونها بر زیراندازهای های ابریشم نشسته بودند و صبح هم و صبح که بر اونها وارد شد حمله کرد آ صبح هنگام که به اونها حمله کرد و بست همو ترابون. هم و حالان که زیر خاک بود خاک نشین شده بود خب الان این و بسته همو هریران و بسته ترابون که است دیگه فلانی بر پرقون نشسته یا بر قالیچه ابریشن نشسته یعنی در ناز و نعمته فلانی بر خاک سیاه نشسته بر خاکستر نشسته یعنی چی یعنی کاملا ذلیل و در فقر تمام در نقمت تمام پس هم اعزاء غروب بر اونها وارد چون ها همه عزیز بودند در حال عزت ناز و و صبح هم صبح بر اونها وارد شد از اللا همشون ذلیل بودن خار بودن از عزت تعبیر کرده عزت صفت دیگه تعبیر کرده به اینکه که زیراندازشون حریر بود از ذلت و خاری اونها تعبیر کرده بر این که بگید زیراندازشون خاک بود بر خاک نشسته هر دو کنایه صفت نگاه کنید خب تا این مطلب رو دیدیم بیت دومش رو نگاه کنید و من یعنی والذی و کسی که فیکف کفهی در دست او من هم از این بنی کلاب کسی که در دست او از این بنی کلاب قناتون قنات یعنی نیزه م? کسی از بنی کلاب که نیزه به دست داشت این از منصوره هر کسی از بنی کلاب که نیزه دار بود منظور یعنی چی؟ یعنی مرد که نیزه تو دست مردان مثل که بگه هر که از بنی کلاب که سویل داشت خب یعنی مرد بود هر از بنی کلاب که نیزه در دست داشت خب کمند اون من مقتداز این کمن خبرش تشبیهه مثل کسی بود که فیکت در دست او من هم از این بنی کلاب خزابون، خزاب بود هنا بود نیزه به دستان اونها همچون حنا دستان اونها بودند منظور از نیزه به دست گفتیم یعنی مرده هنا به دست اون کسی که حنا میگذاشت بر سر انگشتان و دست و دستان خود رو این شک میکرد زنان بودند دیگه زیور دست انجام یعنی مردان اونها مثل زنانشون شده بودند در مقابل سیف و دوله. یعنی چی؟ یعنی چون زنان اهل جنگ نیستند به جنگ از اونها انتظار نمیره جنگ آور نیستند فقط به انگام جنگ ممکن است آسیب ببینند و گریه و زاری کنند مردان اونها هم مثل اینها بودند در مقابل سیف و دوله از چه جهت و چه شبه افتاده؟ از جهت اینکه ارزه و شجاعت در جنگ نداشتند مردان جنگیشون همچون زنانشون بودن تسلیم در مقابل سیفت داره اسیر در مقابل سیفت خب من فی کفهی من هم غناتون یعنی رجال هم کمن فی کفهی من هم غناتون یعنی نسائه که نسائه در چه چیز؟ در اینکه قدرت یارای مقابله قدرت و یارای مقابله با سیف الدوله را نداشتند دستا رو برده بودن بالا و عصیان شده توی بیت اول دو تا کنایه صفت هست توی بیت دوم دو تا کنایه موصوف هست میگه القنات پایین حاشیه او دورم چوبه نیزه یعنی خود اون نیزه پایین نگاه کنید تو اجابش کنا کاونه بستهم حریرن کنایه کرده است به اینکه زیراندازهای اونها حریر بوده آن سیادتهم و عزته از اینکه اینها سیادت دارند ها و عزت دارند کنا کون بستهم حریرن آن سیادتهم و عزته اینا عزیز بودند و سید و سالار حریرنشین بودند و به کون بسته هم ترابند و به اینکه که زیر اندازها و بساط اونها تراب بوده انحاجت هم و زلده هم از اینکه اینها حاجتمند بودند آم و ذلیل محتاج و ذلیل خاک نشین فلکنایت ترکیب اینه بینه انصفت از که صفته؟ صفت عزت و ذلت و کنا به من یحمل و گناتند. کنایه کرده به کسی که حمل میکنه به همراه دارد نیزه کنایه کرده کی؟ انر رجل از مرد جنگی و به منفی کفهی خضابون ان مرده و به کسی که در دست او هناست از خانم زن و قاله اِنَّهُمَا سِوَا فی ضعف اَمَامَ سَطْفَتِ سیف دولت و بدشهی میخواد بگه انهما زنانه و مردان جنگی اونها مساوی بودند در ضعف و ناتوانی اما سطفت در مقابل قلبه سیف و دوله و بدشش و کوبندگی سیف و دوله در مقابل در کوبیدن و قلبه سیف و مردانشون هم همچون زنانشون بودن هیچ ارزه نمشده و کل تل کنایتین کنایتون انموسوفن هر دو کنایه کنایه است، خب تمام شد نگاه کنید دو و قال فی مده کافور متنبی در مده کافور این اینطور گفته میگه ان فی ثوبک الذی المجد فیه لذیاءن یزری به کل زیائن از بهی از بهی یعنی استحانه بهی خار و مردونو. تحقیر کرد از بهی مثل این که بگیم از رازه ایدون به امره یعنی اونو خار کرد و ذلیل شما از بهی یعنی استحانه بهی میگه ان نفیسه بکن همانا در لباس تو این فی بکن خبر ال نست مقدم شده لزیا اسمشه اون لام بهش میگن لام موزهدره مثل ان ال انسانا لفی خص مثل ان نفی ذالک لعبرتن لعل العبر ان نفیسو که لزیا یعنی چی در لباس تو درخششی در لباس تو درخششیست سفت ها درخشندگی. در لباس تو درخشندگی هست یزری به کل زیائن که هر درخشندگی رو خار میکنه تحت شاه قرار میده. این یزری به کل زیاهن صفت زیاد. در لباس تو درخشندگی هست که هر درخشندگی دیگری رو درست شد. تحت و شاعرون خب گوش کنید حالا در لباس او یک درخشندگی هست که هر درخشندگی رو تحت و شاع قرار میده یا در وجود تو یک نورانیت و درخشندگی هست که هر درخشندگی و هر نورانیتی رو تحت و شاع قرار میده یعنی تو خودت یک نورانیتی داری که هر نورانیت دیگری تحت شهای توست. به جایی که نورانیت رو نسبت بگه بده بگه به این نفی که لذیاند. گفته این نفی صوبه که لزیعن. در لباس تو یک درخشندگی و نورانیتی هست که هر نورانیت و درخشندگی رو تحت شهای اینجا صفت زیاد به جای اینکه نسبت پیدا کنه به خود موصوف یعنی کاف نسبت پیدا کرده به لباس که متعلق موصوف این یک بعد دوباره میگه که الذی لباس تو که المجدو لباس تو که مجد توشه حالا مجد و عظمت تو خود این آغاست یا تو لباسشه تو خودشه، خودش مجد داره، نه لباسش. المجدو فیهه در لباس اون نیست. المجدو فیک، مجد تو خودته، تو مجیدی. باز کنایه نسبت مجد و عظمت رو به جای اینکه نسبت بده به خود این شخص، نسبت داده به بگید لباسش. گفته لباس تو که مجد توشه. لباس تو که زیا و درخشش توشه و درخششش هم همه چی رو تحت شعاع قرار میده پس بنابراین تو این دو تا کنایه صفت هست یکی صفت مجد به جایی که نسبت داده شد به خود اون شخص نسبت داده شده به لباسش دومی صفت زیا و درخشش به جایی که نسبت داده شد به خود این شخص نسبت داده شده باز به لباسش گفته این زیاد و درخششی که در لباس تو هست هر زیاد و درخششی رو تحت شها قرار میده درست شد؟ دو تا کنایه نسبت تو این هست پایین نگاه کنید میگه یقول و این نفی صوبه که لزیا ان من المجد یک درخششی از مجد در لباس توست یفوق و کل لزیا به قوت اشراقه که بر هر زیاب و درخششی به قوت اشراق خودش تا خودش قلبه نگاه کنید ایشون یکیش رو گفته گفته اراده انیوسفه تا عل کافورن هم مجد و هم زیاء رو میخواسته برای کافور ثابت کنه کافور خشیدی پادشاه مصر مخواسته هم مجد و هم زیاء رو فترکت تصریحه به حاضر به جن که بگه تو زیاء داری تو مزیع هستی تو مجید هستی به جایی که اینطور بگه گفته زیاق و مجد در لباس توست و از تسریح به هازا ترک کرده تسریح به این مطلب و اسبت هول ما لهو تعلقون به کافور بعد اثبات کرده این زیاق و مجد رو برای چیزی که متعلق به کافوره و هو از و اون لباسش به جایی که بگه تو درخشنده هستی تو مجید هستی گفته لباس تو میدرخشد و لباس تو مجد و عظمت دارد و خب تو تو اند نسبت کنایه از نسبت تمام شد حالا نگاه کنید توی ای که توی زیر نموزج هست این هاشیه هاشیه مهمیه توش تقسیمی دارد که باید توجه کنید بهش میگه که ما کنایه رو از جهت ذات کنایه تقسیم کردیم به کنایه صفت، کنایه موصوف و کنایه نسبت و مشخصات هر کدوم را هم من براتون به طور خیلی زیبا بیان کرد درست شد کنایه رو ما آمدیم به شکل بسیار زیبا برای شما تقسیم کردیم گفتیم ذات کنایه یا صفتی است یا موصوفی است یا نسبتی است تقسیم کردیم خصوصیات شد؟ گفتیم حالا میگه کنایه رو میان از اعتبارات یعنی کنایه به طور مطلب از دیدگاه های مختلف با لحاظ های مختلف تقسیمات متعدد دیگری هم میکنن م? تقسیم میکنن مثلا اینکه کنایه آیا ما به اون معنای لازم معنای مورد نظر بدون واسطه می رسیم یا با واسطه می رسیم مثلا نگاه کردیتون طویل و نجاد ما از طویل و نجاد رسیدیم به طول قامت از طول قامت به شجاع در رفیع و یه دفعه رسیدیم به ریاست در کسی رو اومدیم به کسرت هر آتیش دیاد روشن کردن بعد به کسرت طبخ بعد به کسرت آکلین خورندگان بعد به کسرت زیوف بعد به کریم بودن و جواد بودن واسطش زیاد بود. کنایات گاهی اوقات واسطه دارند گاهی اوقات ندارند از این جهت میشه پس تقسیمشون کرد نگاه کنید هاشیه یک میگه اذا کسورتل وساعتو فل کنایت وقتی که وساعت در کنایه زیاد باشه ها واسطه ها در کنایه زیاد باشه درست شد. وقتی که واسطه ها زیاد باشد کنایه. کسورت تو کسورت الوسا کثرت توفل کنایت نه و کسی رو رمات که گفتیم میرسیم به کسرت هر رهتت بعد کسرت تبخ بعد کسرت آکلین بعد کسرت زیوف بعد میرسیم به کرم و مشت میگه اگر مثل کسی رو رماد باشه سمیت تلویح این کنایه که های زیاده بهش میگن تلویه پس اگه پرسیدن کنایه تلویحی کدومه بگم اون کنایه که واسطه‌اش زیاده و این قلط درست شد حالا اگر و... حالا این تمام شد پس کنایه تلویحی کدومه اونی که واسطه‌اش زیاده غیر تلویهی کدوم اونی که واسطش کمه پس الان مثلا رفیع ال لماد طویل و نجات میشه غیر تلویحی کسی رو رماد میشه تلویحی چون واسطهش زیاده حالا از یه جهت دیگه تقسیم کنیم از چه جهت ببینید کنایه گاهی اوقات آدم زود به معنای مورد نظر میرسه زود میرسه تا میگه آدم میفهمه منظورش چیه مثل اینکه گفتش که ومبستوه و موحری رو بر ابریشم نشسته بودن آدم میفهمه بسی که میگه فلانی رو غالی ابریشم نشسته درست شد پرقو بالش اوست. بر پرقو نشسته خب میفهمه که یعنی عزیزه خیلی عزتمند خاک نشسته بر خاک نشسته بر خاک سر نشسته،, نشسته زلیل گای اوقات دونم زود میفهمه گای اوقات زود نمیفهمه طول میکشه یه مقدار دوره یه مقدار از ذهن داشت شد مثل اون رفیع الامات که ستون خیمش بلنده ما یکم با اون که واسطه نداشت نیر رسیدیم به اینکه رئیسه یا مثل طویل النجات با یه واسطه بود ما به شجاعت مثلا نسبتا دیرتر رسیدیم میگه حالا و این قلت و خفیت اگر واسطه ها کم باشه من معنا هم دور از ذهن یعنی معنا دوره دیر به ذهن میرسه مثل این نحو فلانون من المستریحین میگه فلانی از آدمایی که راحته خدا نگاه کن ببین فلانی واحت چقدر راحته فلانی راحته از افرادیه که بیخیال راحته این که میگن فلانون من المستریحین نه اینکه که دارن متش میکنه این مزمته فلانی راحته یعنی چیز سرش نمیشه عقل و فهم درست حسابی نداره مشکلات نمیفهمه فاحته مثل دیوانه که میگن راحته عقل نداره منظورشون اینه چون تنها کسی که در این عالم راحته میخنده هیچ مشکلی نداره اونیه که عقل و فهم درست حسابی نداره نبیه واسطه نداره هرکی راحته اونیه که عقلتر درسته سابی نداره میخیاله یعنی اینکه که نمیفهمه اما خب دیر میرس آدم فکر یعنی فلانی خیلی تو لازم نعمد این که بری کج میفهمه میگه فلانون میرن مستریحین کنایتن انجهل ول بلاحتی کنایه از اینکه که در جهل و بلاحت ابلهه جاهله اگر این طور باشه یعنی خوب معنا بگید سری به ذهن نیاد پنهان باشه واسطهشم کمه بهش میگن چی؟ سمیت رمزا به این میگن کناهی از نوع رمز اسمش رمز. دیگه مثل اشاره است دیگه. یعنی آدم باید دقت کنه تا رمزو بتونه کشف کنه این هم همینطوره سمیت رمز. اما و این قلط الوصایت و وضوحت حالا اگر وسائط کمه و هم هم هست وسایط کمه وازه هم هست مثل همین بسته هم و هریرون بسته و ترابون کسی که رو قالی ابریشم میشینه خب معلوم عزیزه کسی که رو خاک نشسته معلوم ذلیل واسطه کمه واضح هم هست یا نه لم تکن آ یعنی لم تکن الوسائط و ولی وضوحن وسائط کم نیست زیاده ولی واضحه اینجا ما سر وضوح سر داریم آ. یعنی کنایه واضحه مثل همون کسی رو رمادی که پشت در خونش خاکستر زیاده با اون چندتا چند تا واسطه میخوره تا ما میرسیم به معنای کریم بودن ولی تا میگفتی خاکستر خونش زیاده ها طرف میبهند یعنی این آدم دره مثل اینکه بگی در خونش بازه یعنی نه اینکه منظور این قفل نداره همه میفهمند یعنی آدم یه که کریمه بخشنده است زود فهمیده میشه اگر واضح باشه حالا چه وسائط کم باشه چه وسائط زیاد باشه سن میاد ایمان و اشارتن به این میگن ایما و اشاره بازه، بهش میگن ایماش. حالا چه مثل بستوهم و ایران؟ واسطه کم باشه چه مثل کسی رو رماد واسطه بگید زیاد باشه اولم تکن الوسایتو زمین میخوره به وسایت درست شد دلیلتن وسایت کم نباشه زیاده ولی واضحه مثل چی؟ نگاه این میشه میگن ایما و اشاره نهو الفضلو اینجوری میگن الفضلو یسیرو حیسوسار فلانو. این الان کنایه نسبت‌ها فضلو به جایی که نسبت بدیم به خود اون فلانی بگیم فلانی فاضله؟ میگیم فضل در لکاب او قدم میزنه فضل دنبال او راه میرود الفضل و یسیرو فضل حرکت میکنه و سار فلان هر کجا که فلانی بره تیرا بالای روایتی داره میگه مآلین حق و مآلین حق در کنار علیست این کناهی نسبته یعنی علیان حق اگه اینطور میکنم حقیقت کنایه یعنی حق بغل فلان امیر نشسته کنارش نسبت دادیم به کنار او نشست در رکابشه حق در رکاب اوست الفضل یسیرا و, یسیر و, و سار فلانا کنایتاً عن نسبت الفضل الیه که کنایه هست از نسبت فضل به هم, هم امینه میفهم اینو بهش میگن کنایه از نوع ایما به پس نگاه کنید اگر در کنایه وساید زیاده اصلا به وضوح و غیر وضوح کاری نداریم وساید زیاد در جهت وسائت نگاه کنیم فقط وسایت رو ببینیم اونی که وسایتش زیاده بش میگن تلویهی اونی که وسایتش کمه غیر تلویه اگر وضوح و خفا رو ببینیم اونی که واضحه بهش میگن اونی که واضحه بهش میگن ایما و اشاره اونی که واضح نیست و معنا مخفی کنایه اونو بهش میگن رمز تمام شد بیایم سر یک تقسیم دیگه ببینید کنایه از یه جهت دیگه به دو دسته دیگه تقسیم میشه کنایه از یه لحاظ دیگه به دو دسته دیگر تقسیم میشه یکیش کنایه تعریزی یکیش کنایه غیر تعریزی تعریض یعنی از ارز وارد شدن اورز یعنی گوشه کنایه تعریزی تعریز یعنی گوشه زدن ما میگیم فلانی گوشه میزنه یعنی به جایی که مستقیم بگه به در میگه تا دیوار بفنه میگن کنایه تعریزی یه یعنی ماقام سریع میگه دیگه از کنایه دو دسته میشه یکی از اسم تعریض یکی غیر تعریض حالا اینایی که ما همه خوندیم غیر تعریزی بود مستقیم گفتیم از گوشه نمیودیم ولی اگه شما مثلا اینطوری بگید یه نفری هستش شما رو اذیت میکنه دیگران اذیت میکنه خب شما نمیاد به طور سریف بهش بگید آقا تو که مردمو عذیت می‌کنی، پیغمبر به تو گفته تو مسلمان نیستی این هم حدیثش اونطور بگیم شه حقیقت اینطور نمیگی میای میگه فلانی میگه بله میگه من دیگه حدیثی خوندم میخوام این حدیثو برای شما بخونم میگه بفرمایید بفرم. میگه قال رسول الله رسول خدا فرمود المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسانه مسلمان اون کسیه که مردم از دست و زبانش در امان باشه صدق رسول الله اینطوری میگه اون میفهمه دیگه میفهمه یعنی چی؟ یعنی تو که مردم عذیت میکنی با دست و زبانت طبق این حدیث مسلمان نیستی اون کنایه است کنایه گفتید اما تحریز گوشه زدید از گوشه اومدید نه به نوع اون صفت نه به نوع موصوف نه نوع ساختارش مثل اونها نیست ولی درسته شما کنایه به او زدید و اونو نسبت به کفر دادید غیر مسلمان بودن دادید اما بگید از عرض و گوشه وارد شدید تصریح نکردید به اسمش مثل اون کنایه های صفت نیست که شما اومدید گفتید فلانتو اسمشو گفتید بعیدتو محول قرد موشبارش بزرگه یعنی که فلان اگه می‌گفتید بله فلانی آزار میرسونه به همسایه ها و مردم اینو کناهی قرار می‌دادید؟ از این که یعنی مسلمان نیست خب میشه کناهی صفت به طور عادیش گفتید آزار میرسونه به مردم آزار رسونه خب یعنی این که مسلمان نیست میشه کناهی نسبت ولی اینجا نهیمدید بگید فلانون یا بگی تو آزار به مردم میرسونی منظور یعنی مسلمون نیستی طبقه حدیثون اینجا مگردون شکل نایی بلی شما اومدی گفتی چی؟ گفتی به اون آقا آقا من میخوام یه حدیث برای شما بخونم گفتی بفرما گفتید که پیغمبر خدا میگه المسلمون من سلم المسلمون منیدهی ولی اون میفهمه یعنی اینکه که تو آزار رسوندی پس از نظر پیغمبر تو مسلمان نیستی حال میگن کنا های و خیلی هم زیاده تریض ها هم خوبه هم بده یه جاهای شما تعریض میکنید در واقع نمیخواید اسم طرف رو ببرید نمیخواید حریم شکستهشه نمیخواید به قول خودمون روتون به هم باز بشه در این حال گله خودت هم به او رسوندی اگر یه زمان بگه منظور من تو بودی میتونی بگی نه منظورم شما نبودید آه. اما یه موقع هم هستش که میخوای اون لالش کنی تا بیاد بگه که چرا یه همچین چیزی رو گفتی منظورت من بودم یه تو از اولم بدبین بودی که یه همچین چیزی رو من نظر داشتم تو فلان هایی رو کردی چیم نمیتونه شد کنایه همینه دیگه حالا تو فوایدش خواهیم خواند ما تو فواهد اون تو فواهد کنایه برای شما این مطلب رو خواهیم گفت از حواستون باید باشه به اینکه کنایه به دو اسم تحریزی و غیر تحریزی تقسیم شد. نگاه کنید ببینید چی میگه میگه ومنن کنایه نوع نوونی سمو التعریض تعریض یعنی از عرض وارد شدن گوشه از کنایه یه نوعی هست بهش میگن تحریزی پس کنایه دو قسم شد. یکی قسم تحریزی و غیر تحریزی و هوه انیت لقل کلام کناهی تعریضی کدومه این که کلام اطلاق بشه درست شد و هوه انیت لقل کلام و یشاره بهی الان معنی آخر و اشاره بشه به یه معنای دیگه یه چیزی میگی یه چیزی دیگه اراده میکنی درست یعنی به در میگی تا دیوار به فرد این شکه عربا میگن ایاکه علی. وسم ای یا جارتو ای یا که تو رو قصد میکنم اما وسم ای یا جارتو همسایه تو بفهم تو رو قصد میکنم به تو دارم میگم. ولی همسای تو بفهم این به در میگه تا دیو از از در مسئله میگن تعریض دیگه ای یا که وسم ای یا جارتو و هبه انیت رقل کلام و یو شار بیهی الا آخر یوف فهمومن از سیاق که به قرینه سیاق این معنا فهمیده میشه. اون که بهش برمیگردیم میگیم که اون آزار رسونده به مردم و همسایه‌ره اذیت میکنه و این و اونو می‌بینیم بهش میگیم ما یه حدیثی می‌بینیم از پیغمبر میخوام خدمت شما این رو بخونم آقا اجازه میفرمایید میگه بفرمایید براش می‌خونی اون به قرینه سیاق و حالی که خودش دارد و با شما سری متوجه میشه که منظور شما اینه که تو مسلمان اینو این معنای کنایی رو. الامعنن آخر یفت همه من از سیار. کن مثل اینکه شما بگید به شخصی که یزر رو ناس. مردم رو آزار میده. خیر الناس ناس. بهش بگی بهترین مردم. انفع للناس همل اونیه که نفعش به مردم بیشتر میرسه. یعنی تو که نفعت به مردم نمیرسه. تو شری. یا من مثال زدم المسلم و من مسلمون المسلمون من و لسان خیرون الناس انفعهم للناس این یک و که قول المتنبی مثل قول متنبی یا عرضا به سیف دولت به و همه ده و با سیف دولت که به هم ریخت اوزاش سیف الدوله با او برخورته سیف دولت دوست داشت با سیف الدوله که اوزاش به هم ریخت رفت مصر کافور اخشیدی رو مات میکرد ولی برای خاطر اینکه که سیفت رو دوست داشت و نمیخواست سیفت دوله رو ناراحت کنه کنایه میکرد تحریز میکرد به نامردی های سیفت درست شد؟ برگشت به سیفت دوله اینطور گفت خب ازل جودا هنگامی که و کرم لم یرزق خلاصن منل عذاب هنگامی که جود و کرم از بند عذیت رها نشود کسی جود و کرم کنه ولی آزار عذیت هم بکنه میگه چی؟ میگه کسی که جود و کرم میکنه ولی از اون طرف آزار عذیت هم داره این ازل جود و لم یرزن خلاصن منال ازا هم دو مکسوبن ولل مالو اینجا نه حمد کسب میشه شما جود و کرم بکنید تا طرف مقابل بگه بهبه عجب تو چقدر بزرگواری تو چقدر کریمی حاتم تایی توی حمدت کنه نه حمدی کسب میشه چون طرف میبینه آزار عذیتش کردی اگر چیزی هم بشتادی حمدت نمیکنه نمیکنه نه حمدی کسب میشه ول مال و باقیا و از اون طرف مالت هم رفته چون مردم مال رو میدن تا حمدی کسف کنن مالتم از دست رفته مالتو خورده همدت هم نکرده خب اینو وقتی داره میگه داره گوشه میزنه به سیف دوله که اگر آقای سیف دوله تو کریمی به آدم جود و کرم میکنی بعد از اون طرف هم آدم رو میکنی بذا آدم نه حمد تو رو میکنه و نه مال تو رو که گرفته جلوی چشیشه مال در دست رفته هم دیم نمیشی چرا چون جود و کرم تو با آزار و عذیت تو همه میبینی سیفوت دوله داره حالا اگر می آمد جلوی سیفوت دوله وای می سود تو اگه دوزار قرون به مادادی یا یادت باشه سیفوت دوله تو یه چیزی به مادادی هم دره بردی ما مال تو خوردیم هیچ اصلا یک زرزه هم تو رو قبول نداریم نمی اینجوری میشد. تصریح حقیقت سیفالدله پوستشو میکند اگر میگرفتش ولی اینجوری که گفته وقتی برگشت اومد پیش سیفالدله سیفالدله با اینا اینطوری گفتی به ما منصورالدین نه بابا ما گفتیم بابا اگه کسی جودو کرم کنه تو که اینطوری نیستی اگر کسی جودو کرم بکنه بعد هم آزار و اذیت کنه خاک بر اون سرش مالش رو میخورند هم نمیکنه بلکه پرششم میدن ما داشتیم یه مطلب نبفتیم. این میگن کرایه تعریزی درست شد پس کنایه تعریضی رو هم شما متوجه شدید ازلجود و لم یرزق خلاصن من العذا خلاصن مفعول لم یرزقه فلل هم دو مکسوبن ولن مال و واقع خب کنایه از اسم تعریز شمه. حالا نگاه کنید نگاه کنید کنایه ها رو باید دادن بفهم دیگه یعنی فهم کنایه ما گفتیم بعضی خیلی راحت فهمیده میشه بعضی اون مقدار راحت نیست یعنی یه مقداری باید بیشتر دقت کنه تا آدم بفهمه الان مثلا فرض کنید این توی تمرینات نگاه کنید تمرین یک یکش این توی شعر امروالغیس هست نعوم و زها. نعوم سیغه مبالغه نائمه یعنی کسی که میخوابه زها یعنی نزدیک 11 دوازه روز زها قبل از زهر نعوم سیغه مبالغ مبالغه نائم است در مورد معشوقش میگه نعوم و زهاست. لم لمتن تطقن تفضلی خب این این نعوم و زها او تا لنگ زور میخوابه معشروق من تا لنگ زور میخوابه کنایت چیه میگه وقتی نگاه کنی اونی از نوع رمز دیر به ذهن میرسه واضح نیستون چنان یعنی در ناز و نعمته شاهزاده است نیاز نداره صبح زود بلنش به شیردوشی و نمیدونم به امورات خانه برسه و جارو پارو کنه این در واقع شبها به خوشنشینی و خوشگذرانی مشغوله روزها تا لنگ ظهر گرفته خوابید نه زهر هست ببینید این فهمیده میشه دوشو نگاه کنید القا فلانون اصاح فلانی اصاحشو انداخت پس اون کنایه صفت شد دیگه یعنی در ناز و نعمت بودن این القا فلانون عصا، اسا. فلانی عصای خودش رو انداخت یعنی چی؟ یعنی اینکه اقامت کرد مثل اینکه ما میگیم چترشو باز کرد چون اونها یه رو میگرفتن سرشون نونو خوراکی خودشون رو میگرفتن ردوششون میرفتن هر کجا این اصا رو میزدن زمین یعنی اونجا میخوان صفرشون رو پهند و اقامت کنن خلانی اصاش و انداخت یعنی نیگه وایست اقامت میکنه خب کنایه از اقامت کردن واسطه نداره مثبتن واسه هم است سه رو نگاه کنید کفین محشوقه خودشون میگه کف دستش خیلی نرمه کف دستهای او نائم اطول کفین نعومه یعنی نرمی لطیف است کف دست او کف دستی لطیف داره. خب یعنی چی؟ یعنی در ناز و نعمت چون اون بقیه زنها این دستازها و این آسیابهای دستی و شیردوشی و نمیتونن کارهای خانه را انجام میدادن کف دستها خیلی اما اون افرادی که در ناز و نعمت بودن کنیز و قلام داشتن اینها چنین چیزی نداشت ببینید یا مثلا چهار میگه کارا کولانون سله فلانی دندوناش رو هم فشار میده خب دندوناش رو هم فشار میده یعنی چی اینم میدونید یعنی راحت میتونید بفهم. یعنی چی یعنی خیلی عصبانیه قصبناک فلانی داره دندوناش رو هم فشار میده کنایه از اینکه بسیار فساد رو راحت بهش میرسی درست شو این ایما و اشاره است خیلی واضح یا مثلا پنجش یوشار و الهه بل بنان بل بنان بنان یعنی انگشتان فلانی انگوش نماست ما میگیم،, میگیم فلانی انگوش نماست انگوش نماست کنایه چیه؟ یعنی با انگوش نشونش میدن یعنی مشهوره راحت بهش میرسیم دیگه درست شد؟ چون با انگوش نشونش میدنیم مشهوره همه میشنسنش. شد؟ ببینید بس راحت فهمیدیم کنایه های هم همینطوره درست شد؟ کنایه های هم همینطوره مثلا فرض کنی کنایه محصوف اون شعر اول نگاه کنی قومون ترا هم یوم الوقا یعنی اینا قومی هستند که میبینی نیزه‌های های اونها رو یوم الوقا روز جنگ نیزه‌های های اونها رو روز جنگ میبینی مشقوفتن یعنی خیلی شیفته مشقوفتن به موات نرکتمانی نیزه های اونها روز جنگ شیفته مواطن کتمان هست محل های کتمان خب محل کتمان کجاست آدم با چی کتمان میکنه با دلش دیگه کتمومه یعنی رازو تو دلش نگه میداره مواطن کتمان این مواطن کتمان درست شد یعنی محلهایی که کتمان میکنه چیزی رو توش و کتمان میکنه و چیزی رو نگه میداره مثل همون مجام اول یعنی دلها کنایه موسوف دیگه شما راحت میتونید این مبحث رو بفهمید کنایه موصوف کنایه نسبت مثلا تمرینات سه گروه سه رو نگاه کن یه شعری رو نسالید میگه نه یعنی یومنو برکت یت و او دنبال سایه اوست یمن و برکت سایه او رو گرفته و دنبال دنبال روی اوست یطفا و زل ول مجد و رکابه مجد و عظمت در کنار او حرکت میکنه در رکاب او حرکت میکنه. به جایی که بگه او مجید است و او میمون و مبارک است گفته یمن و حرکت دنبال سایه است اوست دنبال سایه اوست در سایه او حرکت میکنه و مجن هم در کنار او حرکت میکنه مجد نسبت داده به رکابش یمن نسبت داده به زلش که هر دو از متعلق موسو به جای که بگه فلانی صاحب یمنه و فلانی صاحب مجده کنایه نسبت دو تا کنایه نسبت پای میگه البرکتو ورکام علیه به یسار علیه ها اون شطوری که در کنار به قول خودمون حرکت شد خب این ما قشن فهمیدیم این رو دیگه چیزی هم نداره. درست شد گفتیم بعضی از کنایه ها سخت فهمیدنشون بعضی هاشون واحدتره. بعضی ها واضح هم بعضی خفی اونه که خفیه بهش گفت میگن رمز اونه که واضحه بهش میگن ایما و اشاره درست شد؟ مثلا تو صفحه 130 آنه کتاب اونم 130 یعنی گروه پنج تمرینات گروه پنج مثال پنجم نگاه کنید اینو این مثال میگه تجول یعنی می یعنی و جاله و یعنی میچرخه جولان مصدرشه یعنی چرخیدن تجول خلاخیل نسا خلاخیل جمع خلخاله خلخال حلقههایی بوده که مینداختن به پاهاشون مثل علنگو که به دست میندازن میگن سوار اونی که به پا مینداختن بهش میگفتن خلخال میگه تجول تجول و خلاخیل و نساب خلخال زنان دیگر یعنی زنان قبیله خلخال هاشون میچرخه تو پاهاشون یعنی را که میرن میخلقون ها تو پاها علنگو تو دست میچرخه تق و تق و تق صدا تجول و خلاخیل و نسان. ولا ارا و من نمیبینم له رمله اسم معشوقاشه و من اصلا ندیدم برای خانوم رمله معشوقه خودم خلخالن. هیچ هیچکدوم از خلخالها خلخالی رو که یجولو بچرخه ولا قلبا قلب یعنی علنگو ولی من برای خانوم رمله اصلا نه خلخالی دیدم که بچرخه و نه علنگوی ممکن به ذهنتون بیاد میگه زنان قبیله راه که میرن خلخالها دارن این خلخالها میچرخه تق و تق صدا میده ولی من برای خانم خل... رمله که معشوقه خودمه خلخال و قلبی که بچرخه ندیدم ممکن به ذهنتون برسه که یعنی زنان قبیله خلخال و هلنگو رام میرن یا هلنگو ها و خلخالات یا خانم رمله علنگو و خلخالی نداره نمیشرف این منزوش این نیست داره معشوقش را به قول خودمون مده میکنه کنایه از اینه که زنان قبیله نحیفن لاغرند چون اینها زنانی که چاق بودند و از لحاظ هیکلی هیکلمند بودن براشون جز از زیبایی ها و زیبایی های زنانه بوده میگه اون زنان و قوم همه لاغر و نهیفند و ها تو دستشون تق و تق تو پاهاشون میچرخه غمله خلخال داره ولی صف به مچ دستش و مچ پاهاش شسبیده و اصلا تکون نمیخوره خلخالی که بگردد و تق و تق صدا کند نداره یعنی چاقه یعنی آرام خوبید دیر میرسه به این مخفیه میگه رمله اسم المرعته ولقلبو به زمه از سوار پس این الان مثلا از مواردی شد که رمز بود کنایه از این بود که او فربخ و چاقه و زیباست از این جهد داشته متحش میکرده اما خب آدم سخت میرسه بهش درست شد و میشه رمز ببینید کنایه رو کامل گفتم حالا بیاین سر بلاغت کنایه ببینید خب ما این همه کنایه کنایه خوندیم این همه کنایه کنایه خوندیم کنایه فایدهش چیه؟ که این همه تو کلام اومده فایده داره دیگه ویلا بی فایده اولین فایدهی که تو مجازگو بهتون گفتم توسعه سخن تو کنایه هم همینه خب اگه ما قرار بود که همش همه چیز رو حقیقت بگیم در مقابل کنایه تسریحه اگه قرار بود ما به همه چیز تسریح کنیم و صریح بگیم خب ما یه نصفی از سخنان رو قدرتش رو داشتیم الان نصف دیگر رو که با کنایه به دست میاریم این از این نصفه محروم میشد نداشتیم پس کنایه به ما بگید یک وسعت در بیان میده یه نوعی از بیان برای ما دریچهشو باز میکنه پس بنابر این وسعت در سخن هست این یک مثل مجاز اما بیایم فواعد کنایه رو یکی یکی بخونیم خیلی فواعد زیبایی داره که قشنگین تو ذهنتون داشته باشید تا بخونیمش میگه الکنایتو مظهرون من مظاهر بلاقه کنایه یکی از پدیده های بلاود. پدیده از پدیده های بلاود. و قایتون به یک نقطه دور دست و هدفیست که لا یسلو الیها الا من و اوه و صفت قریهتو و کنایه یک هدفیست یه نقطه است که نمیرسه به اون مگر کسی که طبع لطیف داره و قریه و زوغ پاک داره صاف داره بیالایش داره کسی که زوغ پاک و بیالایشی داره طبیعت لطیفی داره یعنی از ادبیات بالایی وارده اون میتونه به این هدف کنایه برسه کنایه تو الفاظ او دیده میشه کنایه استفاده. ولی آدم هایی که به خودمون توسعه سخن ندارن سطح فرهنگ پایینی دارن اینا با کنایه زیاد نمیزنن اینا همون چون سریح میگه مثلا به جز سطح بالاتر از تصریحه باید شد یا نه و سر فی بلاغت ها حالا چرا کنایه بلاغتش بالا شده به چه دلیل کنایه دارای بلاغت هستش راز در بلاغت کنایه چیست درست شد میگه وصرفی بلاغتها انده ها فی سوورم کسیرتن راز بلاغتش اینه که این کنایه در صورتهای خیلی زیادی فی سوورم کثیرتن توعتیکل حقیقتم از به دلیلها. رازش در بلاغت اینه که این کنایه در صورتهای زیادی در های زیادی که کل حقیقت مسخوبت به دلیلن کنایه تصریح رو به ذهن ما میاره حقیقت رو به ذهن ما میاره همراه با دلیل یعنی اگر ما صریح بگیم دلیل توش نیست ولی وقتی با کنایه میگیم همون فهمیده میشه دلیلم توش هست. خب این خیلی خوبه دیگه. یعنی مستدل. الان شما نگاه کنید. اگر بگه مثلا خانم خنساء گفت طویل النجات. اگر به جای طویل النجات بگه صخر آن داداش من صخر شجاع. سخر شجاع. اگر اینطور بگه. آقای صخر شجاع است. خب اینطور اگر گفت که صخر شجاع است ازش دلیل فهمیده میشه؟ نه میتونیم به چه دلیل میگی داداشت شجاعت؟ چرا؟ ادعا توش نیست اما اگر گفتش که طویل و نجاده. از طویل و نجاد رسیدیم به طول قامت از طول قامت به شجاعت این ازش شجاعت فهمیده میشه طویل و نجاد یعنی شجاعت ولی دلیلش هم گفته انگار گفته داداش من شجاعت نمیبینی چه قدی داره؟ نمیبینی چه شمشیر بلندی به کمرش؟ به دلیل این قدر بلند این رشید بودنش و این شمشیر بلند به کمرش آدمه دلیل هم داره. اگر بگه فلانی کریمه جواده داداشم کریم و جواده و ازش دلیل فهمیده نمیشه و به چه دلیل میگه کریمه چی دیدی ازش اما اگه گفت کسی رو رماده ازش دلیل فهمیده میشه. یعنی چی؟ میگه یعنی داداشم من کریم و جواده پخشنده است به این دلیل نگاه کن پشت در خونش چرا خاکستره اون هم خاکستر پشت در خونش پس وصرفی ها یک یکی از رموز بلاغت در کنایه اینه که شما مطلب رو بهت میده همراه با دلیل وصرفی بلاغتها انها فیسو ورین کسیدتن توتیک الحقیقتن مسحوبتن همراه با دلیلش مصخوبتن به دلیل ها ولا قضیه ته توتی که على حقیقته قضیه رو برات بیان میکنه و فی ها برهانها و در لابلای اون برهان و دلیل هم داره همراه با دلیل همراه با برهان داره بیان میکنه که قول البهتری حالا من مثال زدم این یه مثال دیگه بزارم. که قول البهداری فلمدی مثل قول آقای بهداری در مد اینطور طور گفته یقوزون فضل لحظ منحیس و ما بدا بدا یعنی این آقای خلیفه بدا یعنی زهره ما زائد است یعنی منحیس و بدا از هر کجا که ظاهر بشه فضل یعنی اضافی زیادی لحظ یعنی نگاه کردن یقزون غذ بسرهو یعنی چشمشو انداه پایین یقذون یعنی مردم چشمشون و پایین میندازند خیره خیره نگاه نمیکنند زیادی دیدن رو خیره نگاه کردن رو کم میکنند از هر کجا که این آقا ظاهر بشه یعنی از هر طرف که این آقا بیاد مردم خیره خیره بهش نگاه نمیکنند. خب من حیس و ما بدا لهم لهم متعلق است به بدا خب میگه اینها خیره خیره به نگاه نمیکنن از هر کجا که این آقا ظاهر بشه چشمشون رو اضافه نگاه کردن رو کنار میذارن از هر کجا این ظاهر بشه اضافه نگاه کردن رو از کی ان مهیبن فستودور محببن یعنی محببن فستودور اینجاز هست داره دیگه ان متعلق به یغوزدونه چشمشون رو میبندند از هر جایی که این آقا در مقابلشون ظاهرش، از هر کجایی که این آقا ببینن خیره بهش نگاه نمیتونن بکنن میبندند چشمشون رو بر روی کسی که مهیبه در صدوره محیب یعنی حیبت داره می ترسند ازش در سینه ها حیبت داره در سینه ها دوست داشتنی فسودور در دنها یعنی یک کسی هستش که حالا یه محب هست مثلا یک کسی قاتل خیلی فلان فلان شده یک کسی ببینه خب می ترسه این چیز نیست برای اون مایه افتخار نیست نه این اگر حیبت داره هیبتیه که دوست داشتنیست که یه آدم بزرگ یک عظیم یه رهبر دینی با اون که این آدم این هم ازش خوف دارن هم به قول خودمون احترام شدارن دوست داشتنی از سر دوست داشتن ازش مثل که آدم از خدا می مهیب انمهی بنفسدور محبب بنفسدور چشمشونو از کسی که می ترسن ازش هیبت دارن در سینه هاشون تو دلشون و از طرف دیگه نسبت به او محبت هم دارن اضافه نگاه کردنشون رو نسبت به او از هر کجا که بیاد میذارن نه چشمشون رو میبندند و خیره خیره به او نگاه نمیکنند. این ها خیره به او نگاه نمیکنند خیره به او نگاه نمیکنن یعنی چی؟ نمیتونن خیره خیره تو چشاش نگاه کنند کسی رو که تو دلشون دوستش دارن و نسبت به او حیبت دارن این که خیره خیره نمیتونن تو چشش نگاه کنن یا چی یعنی او رو عظیم میشونن احترام میکنن یعنی انقدر اون آدم عظمت داره این آدمی که دوستش دارن و حیبت داره، از هر طرفی که میاد توانایی و قدرتی که صاف بهش نگاه کنن سرشون زود میگذار میکشن بشن. پس یقوزون فضلن لحظ یعنی یعظمون یعنی یکبرون اینو بزرگ میدارن تعظیم میکنن میگه کنایه صفت دیگه یعنی او را عظیم میشمرند او را کبیر میدانند فرنهو کناهن اکبار ناس بزرگ داشت مردم للمندو و حیبت ایاه و اینکه از او بگید فارس به دل دارن احترامشو دارن کنایه کرده از این تعظیم مردم به قد ز لبصار به اینکه چشمارو پایین میندازن خیرهش خیره یهوش نگاه نمیکنن الضی هو فالحیبرته برهانن علی الهیبت ولش اگر میگه مردم اینو خیلی تعظیم میکنن مردم اینو خیلی بزرگ میشمارن دلیل نداش دورمون به چه دلیل میگه مردم اینا راست این میشمارن دلیل هم نبود ولی الان وقتی میگه که مردم نمیتونن خیلی. صاف تو صورت این آدم که دوستش دارن و حیبت داره نگاه کنن وقتی میگه نمیتونن صاف تو صورتش نگاه کنن آدم بفهمه یعنی تعظیمش میکنن تکریمش میکنن احترامش میکنن دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نگاه کن انقدر این آدم پیش اینها اعتبار داره که صاف نمیتونن تو چشمش نگاه کنن دلیل داره میگه به قصد لعبسار الوزی خوبه فیل حقیقت برهان و نلن حیبته و اجنال و و حازل خواستت و جلیلیتن هن و نسبت این فایده که دلیل و برهان همراهش هست و شما در کنایه های, در کنایه های صفت و کنایه های نسبت این رو میتونید ببینید پس یکی از فایده‌هاش این شد که مطلب رو بیان میکنه همراه با دلیل و ترخ این دیگه از اون مطلبی که من گفتم توصی سخن هست دوم من اسباب بلاغت الکنایه انها تزع الک المعانی فی صور المحسد ببینید معانی یعنی مفاهیم یعنی چیزایی که شما باید درک کنید کنایه میاد اینا رو به شکل محسوس میکنه شما می نقاشی کنید می تصویر بکشید خب قطعا چیزی که نقاشی بشه که چیزی که تصویر بشه خیلی برای آدم ملموس تا چیزی که بفهمید الان شما میگید نگاه کنید فلانون چریمون مثلا از سخرو, از سخرو. داداش خست چریمون چریم هست خبید بفهمید کلم و بفهمی، بفهمید جود و بفهمید بعدم بگی داداشون کریمه فهمیدی منظور چیه میگه بله بله فهمیدن یعنی پول میده به مردم یعنی کمک میکنه گریم و فهمید. اما نگاه کن وقتی میگه که کسی روز ماده همین فهمیدیم میشه ولی شما کسی روز ماده میتونه نقاشی کنید. میتونید یه خونه بکشید ها؟ در داشته باشه ونگ خونه ترتمیزداداش نوشتید بیت تو صخره اینجا خانه آقای صحه بعد پشت در خونه یه مقدار زیادی خاکستر کشیدیم نه خاکستر خواه هست یه نقاشی میتونیم بکنیم کراموت نقاشی کرد. رئیس بودن بگیم بلا داداشت من رئیسه بگیم رئیس می یعنی چون چونگار یعنی بزرگ فرباد میده میفهمیدم باید بفهمید اما اگر اومدیم چندتا چند تا خیمه کوچیک کشیدیم یه خیمه بلندم وسطش کشیدیم و اون خیمه بلند نوشتیم خیمه آقای سخت رفیع العماد میشه عپاشی کرد درست شد؟ ما چیزی که محسوس باشه خیلی بهتر فهمیده میشه تا چیزی که مفهمه. پس یکی دیگه از خصوصیات کنایه اینه که معانی رو در شکل محسوس و چیزی که با چشم ببینیم تصویر میده برابا. و من اسباب بلاغت کنایته انها تز اولکل از اسباب و علل بلاغت کنایه اینه که انها تز اولکل معانی فی محسات معانی و مفاهیم رو در صورت محسوس نشونده ولا شک و شک نداریم ما انها از از خاص خواست این از روژکی های هنره فنه هنر هستش که معانی و مفاهیم رو میاره به شکل حس نشام. مثلا شما لبخند جوباند رو میبینی. این نقاشی رو میبینی. این داره مفهوم و و ناامیدی و خوشحالی رو تو چهره اون داره نشون میده. این کار نقاشه. یه نقاشی کشیده شما دارید تو این خوشحالی رو میبینی. خوشحالی رو باید بفهمی. بنا اندوه رو باید بفهمی اما تو این نقاشی داری میبینی. اینم هم کار همین طور کنایه همه می کنیم که انده ها زیه خواسته مصور زیرا یه نقاش ازاره سمله که صورتن للعمل یه نقاش موقعی که برای شما یک تصویری از آرزو میکشه اول یا ناامیدی یه چهره کشیده میگاه میکنیم که اه این دلش چقدر امید خوشحاله داره خند تو دلش می اون یکی رو نگاه کن اوه چقدر ناامیده چقدر یأس و ناامیدی داره این چقدر غمگینه داره غم و اندوه و خوشحالی و سرور و آرزو و امیدواری رو که مفاهیم هستن تو نقاشی به شما نشون میده این کار نقاشه کنایه هم نقاشی در واقع بیادیه میگه فعیلن المصور زیرای نقاش ازالس ملکه صورتن للعمل وقتی داره برای تو یه شکلی از آرزو و امید رو میکشه اولیه است به حرکت و جعلک ترا تو رو مبخوت میکنه به حرکت و جعلکت ترا و تو رو قرار میده به ای که میبینی ما کنت تعجز ان تعبیر انه و واضح همه. تو داری چیزی رو میبینی که نمیتونستی قشنگ رو بیان کنی تو نمیتونستی آرزو و امید رو خوب توضیح بدی نمیتونستی ناامیدی رو قشنگ بیان کنی باید چقدر جمله میگفتی تا ناامید بودن رو بفهمونی چقدر باید مطلب میگفتی تا امیدوار بودن رو بگید عمل رو میفهمونی این داره با یه نقاشی همه اون رو به شما منتقل می‌کنه. درست شد؟ تو رو مبهوت میکنه و تو رو به گونه قرار میده که میبینی چیزی رو که عاجز بودی از اینکه که اونو بیان کنی به طور واضح و ملموس نیمتوسی بایام اما این داره به طور نقاشی و یه نقاشی میبن مثل مثل کسی رو رماد مثل کسی رو رماد که تو شعر بود فلکنا یا عن الکرم یا رسول و شر یعنی کسی که آورنده شره ما میگیم آتش بیار معرکه خب این آتش بیار معرکه یعنی شما دلیل در واقع یک کسی رو اما ما ما آتش بیار معرکه به کسی بگیم که منظورمون شوخی کردن باشه رسول شان اینا منظورشون شوخی کردنه کنایه از شوخی کردن کسی رو رماد کنایه از کریم بودنه صفته الان شما نگاه کنید رسول و شرق. یه نفری رو می داره میاد یه گرز آتشینیم هم به دستش این گرز روش نوشته شر این داره با این میاد به طرف روزه این یعنی شوخی یعنی شوخی رو داره به که تصویری نشون. درست شد؟ میگه فلکنای یه مزاح. در کنایه از شوخی کردن اون یکی هم کسی رو کنایه از بگید کلیم بودن بخشنده بودن اما هر دوشون میشه نقاشی کرد درست شد خیلی زیباست و قول بختری و مثل کسی رو فل کنایت تحنل کرم و رسول و شر فل عن تحنل و قول البهتری یعنی مثل و قول البهتری الان اینو رو نگاه کنیم میگه اوما رعیت کنایی ها. اوما رعیت المجد الگا رحلهو الگا خوندیم رحل اقامت انداخته اساس انداخته این خودش کنایی از صفته یعنی اقامت کرد. این کنایی صفت بینه الگا بارش بارشو گذاشته زمین حساشو انداخته یعنی اقامت کرد این کنایه صفت توش اما قل نبید کنایه نسبته میگه اوما رأیت المجد تو نمیبینی مجد رو القا رحلهو که رحل اقامت انداخته فی آل در آل تلهه ثم لم تحول بعدم از اونجا تکون نخورده از اونجا حرکت میگه مجد و عظمت بار اقامت انداخته در آل تلهه در این آل طلحه که یه قومند بعد هم سمه یعنی هر چقدر هم گذشته الان مدت ها گذشته لمیت اول از اونجا تکونم نخورد مجد و عظمت اومده در بین آل طلحه مقیم شده و از اونجا تکونم با اون مدتها مدت ها گذشته تکون نخورد این منظورش چیه؟ منظورش اینه که آل تله امجادند دارای مجدند کرما هستند کریم هستند اگر میگوید آل تله کرما آل تله مجیدون ما ازش چیزی نمیفهمیدیم فهم میفهمیدیم که اینها باید درکش میکردیم کرم دارن جود دارن اما درست شد مجد دارن اما اگر این بیت رو بخونیم میتونیم نقاشیش کنیم الان یه دونه جاری رو بکشیم خیمه های زیاد اینا آل تر هم. یه نفری دم کشیدیم خیلی خیلی خوشتیب و گل. بار رو دوشش اومده اومده اومده رسیده وسط اینها بارشو گذاشته زمین گفته آخهش رسیدم و دیگه از اینجا تکونم نبخورد مجد اومده بین اینها ساکن شده و از اونجا تکونم نخورد، حس نقاشی بیتون میشه که تو چند تا ن همه ما المجد تلمجد الگاره الغاره پس خودش ال لخون خودش کناهی صفته بار اقامت انداخته رهلشو زمین گذاشته یعنی مقیم شده اما اینکه آل تله مجد اومده وسط اونها اقامت کرده آه؟ و از اونجا تکونم نخونده این کناهی دیگه به جایی که بگیم آل تله مجیدن گفتیم آل تله اومده همسایه اونا شده و از پیششون نرفته میگه فلکنایتن نسبت شرف یعنی همون مجد الانه تنه میگه کل و اولائک همه اینهایی که دیدی یو برزو معانی همه اینها معانی و مفاهیمی رو برای شما داره واضح میکنه فی صورتن تو در یه شکلی که شما دارید بگو میبینید اون رو تو و ترتاه و نفس و چهره و, و آرامش هم پیدا میکنه نفس در کناره معانی رو حسی کرده با چش می الان انگار خیال می‌کنی میتون تصور کنی که اومده با بار اقامت در بین حال طریه انانداختر، کسی رو راد میتون نقاشی کنی. محسصش کرده همه این کنایههایی که دیدید یا برز نکه. ظاهر میکنه برای تو معانی و مفاهیم رو در یک صورت و شکلی که تو شاهده ها مشاهده می‌کنی اون رو و ترتا و نفس و که و روح تو هم، در کنار اون آرامش پیدا میکنه. یعنی همچنین احساس میکنی چقدر قشنی فهمیدی، چقدر زیبا بود، لطیف بود. احساس آرامش رو لطافت میکنه. بعد شروع میکنه از خواست کنایه یکی دو تای دیگر رو بیان میکنه که کنایه بحثش تموم میشه. بعد یه مبحث هم داره که کل علم بیان که درس ما بوده تو این ترم همه رو به طور خلاصه بیان میکنه. که اثر و علم البیان فی تعدیه المعانی ما سه گروه رو خوندیم دیگه یک نو تشبیه خوندیم انوا و اقسامش یک نوع مجاز خوندیم انواع و اقسامش و یک نوع هم کنایه درست شد؟ یعنی کل این ترمین رو خوندیم کنایه آخرش هستیم داریم بلاقت کنایه رو میخونیم کل این چه که ما خوندیم از هر یه نمونه و خلاصش رو توی این اثر علم بیان بیان میکنه ما از فواید بلاغت در کنایه یه مقدار باقی میمونه که میگذارم بمونه برای جلسه بعدمون و اون اثر علم بیان هم خوانده خواهد شد که خلاصه ی کل کتاب باشه که شما کل این طب و هرچه خانده با من یک دوره دیگری هم با مثالهای جدید با هم انجام میدیم بعد اشالله تعالی شروع میکنیم. به قول خودمون به جمع بندی کردن و هم مباحث رو دوباره گوش کردن و دوباره مطالعه کردن این مباحث هم فهمیدنیه زیاد مباحث بقول خودمون و تو زندگی انسان هم به درد آدم میخوره یعنی ما خیلی از چیزها رو میتونیم با این بفهمیم ان انشاءالله توی جلسات بعدمون اون دو تا جلسه یک هفته برد داریم انشاءالله این مقصد رو میتونیم تکمیل کنیم دیگه کاملا سرفصل مورد نظرمون خانده شده همه شما رو به خداوند صبحان میسپن انشاءالله که موفق و معید هستید و از هر گونه استرس و نگرانی و استراب هم انشاءالله به لطف الهی دور باشید موفق باشید خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله ببرد